اِنَّ اللَّهَ لَا بقوم طریق هدایت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي حدانا لحاظا و ما کننا لنحتدی لولا انحدان الله ستایش الله را که ما را به دین هدایت نمود و اگر الله ما را هدایت نمی کرد ما خود هدایت نمی یافتیم با قسمت بسی کم از مجموع گفتگوهای صوتی طریق هدایت در خدمت شما شنوندگان گرامی هستم این مجموع گفتگوهای صوتی به بررسی آیات قرآن میپردازد در این راستا برنامه بسی رو به موضوع القاع سنت جاهلی پسرخاندگی اختصاص دادم یکی از برچسب‌های ناروا به محمد رسول الله در مجالس و پاتقهای قرآن ستیزی و اسلام ستیزی اینه که مدعیند که پیامبرشون عاشق زن پسرخوندش میشه و با او ازدواج میکنه و با طرح این موضوع و با سمپاشی تبلیغاتی جهتدار مدعیند که محمد العیاظ بالله اونقدر زنباره و هوسباز بوده که به زن پسرخوندش هم رحم نکرده و در این راستا به مقام شامخ محمد نبی حتا موده نموده و ایشون رو تخریب شخصیت میکنند تا با این ترفند اصل دیانت اسلام رو نشونه گرفته و به زعم خودشون ضربه اساسی بر پیکر اونو وارد کنند حال با توجه به موضوع مطروحه ببینیم به راستی محمد نبی عاشق زن پسر خونده شد یا قضیه چیزی دیگه است که مخالفین اسلام و بدخواهان مسلمین به واسطه قرزورزی و اناد جاهلان این مسائل سراپا جعلی و کذب رو به ایشون منتصب میکنند. همان همانگونه که واقفید مطابق آیات چهار الی پنجم سوره احزاب الله متعال به محمد نبی حکم و فتوا صادر میکنه. که سنت جاهلی پسرخوندگی از نظر شریعت قرآن ملقا گشته و عنوان میکنه که ایشون رو یعنی فرزند خوندهاشون رو به نام پدرانشون بخونید و در صورت عدم شناخت پدرانشون اونا رو به عنوان برادران دینی و یاران خودتون تلقی کنید سوره احزاب آیات چهار الی پنجم و پسر را پسران شما قرار نداده است این گفتار شما به زبان شماست ولی الله حقیقت را میگوید و اوست که به راه را هدایت میکند آنان را به نام پدرانشان بخوانید که این نزد الله عادلانه تر است و اگر پدرانشان را نمیشناسید پس برادران دینی و یاران شمایند و در آنچه چه مرتکب آن شده اید بر شما گناهی نیست ولی در آنچه دلهایتن ام داشته است مسئولید و الله هست که همواره آمرزندی مهربان است حال آیه مورد بحث پیرامون زید خونده محمد نبی رو با هم مورد بررسی قرار بدیم تا ادعای پوچ جعالین ظالین و دجالان مظلین بهتر براتون هویدا بشه که چگونه با قلب چطمان و تحریف حقایق قرآنی این حرافات اخلاقی و جنسی خودشون رو میخوان به رسول الله ببندن سوره احزاب آیی سی و حفتان و اید تقول انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علی و اتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى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 و كان امر الله مفعولا مطابق آی سی هفتم سوری زید پسر خونده محمد نبی بوده و با انایت به اینکه زید قصد طلاق همسرش رو داشته محمد نبی از زید میخواد همسرش و طلاق نده امسی که علیک زوجک و الله نگهدار نزخیش همسر خود را و تقوای الهی پیش ساز حال از مخالفین اسلام باید پرسیده بشه اگر واقعا محمد نبی عاشق و دل باخته زن پسرخونده شده چگونه به زید میگه که همسرتو طلاق نده و با او زندگی بکن براستی کسی که عاشق یک زن شوهردار بشه به شوهرش میگه که همسرتو طلاق نده و با او زندگی بکن یا با هزاران ترفند میخواد زن رو به تصابه خودش در بیاره و در ادامه آیه میبینیم الله متعال میفرماید و تخفی فی نفسی که مالله مبدیه و تقش الناس والله الله حق و انتقشاهو و نهان میداشتی نزد خود آنچه الله هست آشکار کنندی آن و میترسیدی از مردم و الله سزاوارتر است که از او بترسی آری الله تعالی به محمد نبی حکم و فتوا صادر میکنه که محمد در جهت القا و ابطال عملی سنت جاهلی پسرخاندگی از خودت شروع کن و با انایت به اینکه زید پسرخونده محمد نبی بوده و ایشون همسر خودش و طلاق داده الله متعال به محمد نبی دستور و فرمان میده با او ازدواج کن و در این راستا میبینیم که محمد نبی در آیه فوق بجای اینکه فرمان الهی رو مبنی بر شکستن سنت جاهلی مشکین یعنی حرام بودن ازدواج با همسر مطلقه پسر برابر عرف محیط و کسر شعن بودن ازدواج با همسر مطلقه پسر خونده رو اطاعت کنه از اجرای عملی این فرمان واهمه داشته و از مشرکی میترسیده فلذا در ادامه آیه مورد سرزنش و معاخظهی الله رب العالمین نیز قرار میگیره و تقشا الناس الله احق ان تقشاهو و, و میترسیدی از مردم و الله سزاوارتر است که از او بترسی و در نهایت میبینیم که محمد نبی با زن متعلقهٔ زید ازدواج میکنه و سنت جاهلی مشرکان و کافرانی پسرخاندگی عملا از نظر شریعت آلی اسلام باطل میشه قضا ضید من ها و ترا زوجنا کحال لکی لا یکونو علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضو من حن و ترا و امر الله مفعولا تاقاهی که بگذرانیت زید از انزن ها را یعنی زید زن خیش را طلاق داد همسر تو گردانی دیمش تا نباشد برای مؤمنین سختگیری در زنان پسرقندگانشان گاهی که بگذرانند از آنان حاجت را یعنی آنها را طلاق بدهند و کار الله شده نیست حال ترجمه کامل آیه سی و هفت سوری احضاب رو با هم مرور کنیم و آنگاه به کسی که الله بر او نعمت ارزانی داشته بود و تو نیز به اون نعمت داده بودی می میگفتی همسرت را پیش خود نگهدار تقوای الهی پیشساز و آنچه که الله آشکار کنندی آن بود در دل خود نهان میکردی و از مردم میترسیدی با آنکه الله سزاوارتر بود که از او بترسی پس چون زید از آن زن کام برگرفت و او را ترک گفت وی را به نکاه تو درآوردیم تا در آینده در مورد ازدواج مؤمنان با زنان پسرخواندگانشان چون آنان را طلاق گفتند گناهی نماشد و فرمان الله صورت اجرا پذیرد در آخر از اینکه به سخنان بنده پیرامون موضوع القاع سنت جاهلی پسرخواندگی گوش کردید کمال تشکر رو دارم پروردگارا گناهان ما را بیامرز بدیهای ما را بزدای و ما را در زمره نیکان بمیران یا چنین باد